در خرابات مغان گر گذر افتد بازم حاصل خرق و سجاده روان در بازم حلقه توبه گر امروز چو زهات زنم خازن میکده فردا نکند در بازم ور چو پروانه دهد دست فراغ بالی جز بدان آرز شمعی نبود پروازم صحبت خور نخواهم که بود عین قصور با خیال تو اگر با دگری بردازم سر سودای تو در سینه بماندی پنهان چشم تردامن اگر فاش نکردی رازم مرقسان از قفس خاک هوایی گشتم به هوایی که مگر سید کند شهبازم همچنگر به کناری ندهی کام دلم از لب خیش چون چونه یک نفسی بنوازم ماجرای دل خون گشته نگویم با کس زن که جز تیغ غمت نیست کسیدم دم سازم گر به هر موی سری برتن حافظ باشد همچو زلفت همه را در قدمت اندازم